بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الله على سیدنا رسول الله و آله طیبین قاهرین المعصومین و لعت دائمت على عدائهم اجمعین اللهم اخرنا جميع المشتردین رحمنا برحمتی یا ارحم الراحمین بحث وجبه کیفیت انتقال اون از اون روایاتی که اجمالا ما هم شنیدیم به مسئله فسادهای اصحاب در طول زمان هرچون که یه مقدار از اون روایات نافی رو که شدت داشت مرحوم صدوق آوردند از زبان الله تعالی علیه و بعد از ایشون هم مرحوم سید مرتضا به مناسبتی در زیل کلام امیر المومنین یاکم و تعلم علم نجوم، اشون هم نه رو فرموندن اخری ایشان سید مرتضا ر... سید رضی در نهتی برام اخری ایشان سید مرتضا به یه و شیخ مفید هم متعرض مسئله از بغدادی ها شدن. اما در عبارتی که منصوب به شیخ مفیده خیلی اون تندی هایی که بعد تکفیر و قرمت تعلوم باشه مطرح نشده در عبارت شیخ مفید اون که در عبارت شیخ مفید بیشتر مطرح شده اون جنبه هایی که مربوط به علم میشه که اینا اصابات ندارن دوست میگن اشتباه میکنن خلاف واقع میگن بیشتر این جنبه شد اما مرموم سید مرتزا تقریبا اولین شخصی از خواه های بغداد ما که خیلی تند و سریح راجع به این مسئله وارد شدن و اشاره هم به روایات دارن و در این من دیروز نقطه رو اعز کرد نقطه لطیفه که مثلا فقیهی که میاد و نظر به روایات داره میتونیم از فتوای رو و تعابیر رو مقدار نظر او رو احراز بکنیم مثلا سیراه مرتضا صحبتی از احراق کتب نکرده به این عبارده که خوندیم و خیلی تون شده دعوید عوازجو خوندی، خیلی عوازو تونید به سیراه مرتضا از احراق کتب نکرده بخلاف ترسیم شیخ رو عملی که خوندی، عواز شهر رو عملی رو رو خوندیم ایشون وبحث احراق کتب رو هم مطرح کرده در عز پرم پس مثلا با این که احراق کتب. قبل سید مرزا در کتاب شیخ صدوق موجود بوده در قوم این کتاب من لا لایسته حالتقی احراق کتب رو داشت با که سیر مرزا متعرض اونها نشده این یک مثلا دومان مثلا در که روایاتی زیادی ارز کردیم از کتاب فرش المحموم مرموم سیر تابوس خوندیم که احمه علیه وسلم اجمالا علم تعیید کردن گفتن علوم انبیاز روزه علوم انبیاز و ما روایات رو خوندیم که دیگه اینا در جامعه گفتیم که امیرالمومنین صاعدر تعالی بزرگ رضا صلوات الله و سلام علی نسبت دادن که اینها این این مثلا اطلاعات نجومی به کار بردن سوال کردن نجوم فلانی چطور نجوم کذون چطور اون نجوم خود اون نجمی که اگر تاثیر بگه مثلا شطورها به عیجا میاد چیل میشه شلون درازنم که ما یک روایاتی که از این دستم هم داریم که ظواهرش که المنجوم نجوم داشته و اینا رو سلام براد بودن و علی موسی هم به کار بردن مثلا گفتن خلا از که اتفاق افتاد مال قرون بر بوده یعنی زاوائده ش اینطوری شیخ مفید اصلا به این روایات هم حساب نمی کنه اینم خیلی عجیبه اصلا کلا این طایفه رو اصلا اشاره هم بهشون نداره یعنی مخاطب که گفتن یعنی شما دقت بفرمایید اصن تحولی که در روایات ما هست بعد از سید به 200 تقریبا 30 سال چون سید مرتضی فوت ایشان 3436ه مرحوم سید مرتضی و مرحوم سیرتاوس زحاتش 664ه 8 سال بعد از حمله مغول به بغداد که 656 بود ایشان 8 سال بعدش درگذشت ایشانه 664 تقریبا 230 سال بین روایتی و 26 سال بین رفته فاصله از بین سیر مرتضو و معروف سید تابوس سیدان تابوس به عکس اون روابط بیشتر آورده <تصفيق> هر چیز سید بیشتر به بی این طایفه از روابط که روابط خزیر است در زمین نجوم و تعلق نجوم سیدان تابوس بیشتر اون روابط یعنی اگر سیدان تابوس ندازد ما را در اختیار نمیاد یعنی یک مختصر است احترام به ایلا به اختیار ما اونها نبود چرا توی او روزه کافی دستش بود اما به اون انزهریدش و به اون تعدادش به اختیار ما نمی رسید اگر مرموم سیدون تاووس نبود این هم راجع بیم یه بحث یعنی این بحثی رو که مکتب بغداد راجع به نجوم شدو کرد روی دو محور بیشتر بود یک محور به لحاظ علمیت این ها درست درسته درست نیست حالی حالا ما به شریعت نداریم به حکم شریعت نداریم اصلا اینا دقیق علم درستیه مثلی که الان مثلا میگن آیا طب نباتی طبی که روی اعشاب و نبات و گیاهان هست این درسته یا این طب جدید مثلا ای بحث این بحث اینطوریتو اجمیستیم وقتی به شریعتی نداره هم مرموم شیخ مفیده هم مردم سید مرتزا یه مقدار زیادی بحثشو اینه که این اصلا واقعیت نداره و جهات مختلفی از اشکال و در این بخش علمیت نکات مختلفی رو دارن مثلا یکی از نکات بسیار مهمشون که این یک کمی تجربه است نقطه علمی نداره یعنی اینطور نیست که قابل تعلیم و تعلم باشه پس روی مثلا با مثال شما در علم فیزیک مثلا میگین اگر هر جسمی فلزی مثلا حرارت ببینه این مثلا انبساط پیدا کرد خب میشه یه آسانه یه آهن رو بگیرین هر بشه این که باز میشه روی رو بگیریم مس رو بگیریم این اصطلاحا علم میشه قابل مشاهده قابل تکرار قابل تجربه باشه این به اصطلاح اون نقطه پرگیش هم بعد میشن تحلیل میکنن که مثلا فرض کنید مثلا زراعتو مش اینطور مثلا حطونید مثلا اینطور تغییر کرده چی شده به این صورت مثلا تمدد پیدا کرده انبساط پیدا می‌خواهم بگم این مطلبی رو که منجمیه از قبیل علم نیست این مجرد تجربه است وقتی مثلا زهر در مقابل فلک ستاره قرار گرفته مثلا اون آقا قبلا نوشته آقا بعدیم نوشته مجموعاً 200 بار تجربه شده این شده که وقتی زهر یکی از بزرگان فوق کرده این اینجوری می‌گویند نقطه آه، تجربه به اتفاق افتاده مثل بحث فیزیک نیست که به شما میگه مثلا اگر آب رو کنار دریا بجوشونیم بیاریم کنید در دمای درجه جوش میاد، حرارت بدین آب در دردن دردن دریا کنار دریا 100 درجه این قابل تجربه است شما میتونید تو تو تهران هر جوخه تجربهش کنید این قابل تکراره این علمیه این نقطه فنی داره اما این مطلبی رو که اینا میگن نفی فنی نداره خوب دقت بکنید مثلا اینها نقطه فنی داره چرا؟ چون با حاسبات به کسوفی که اینها میگن نکته فنی داره چرا؟ چون خورشید در نظر گذن حالا خورشید دور زنیم یا زنیم دور خرشی. یک و کلون فی فلکه میست و اون یک نظامی رو خدا در طبیعت قرار داده طبق این نظام در شبهای چهارده هم اصلا طبق قاعدش که در شبهای چهارده هم همیشه باید خصوف میشه اینکه کمتر میشه این حالا قاعده است. وضع حرکت ماه و زمین و خورشید یه جوری سیارچوهای 14ام در وقتی که بح... به اصطلاح بذره کامله مثلا جسم زمین ت... چون واسطه نمیشه زمین یعنی زمین که واسطه میشه اما در حالی که قابل رویت نیست چیز نیست این به این صورت در میاد که اختلاف زاویه پیدا میکنه این این میشه که شما مثلا خسوف کلی رو ممکن در سال دو مرتبه یه مرتبه دو مرتبه این یک نظام طبیعی است اگر یعشینده باشین در بعض از روایات که مثلا خسوف ما در آخر ماه یا در اول ماه جز علامات ظهور است در بغیه الله قرار داده شده چون اون غیر طبیعی است در علم نجوم چی چیزی ما نداریم که اول ماه خسوف بشه خسوف بالای چارتنامه اینی که در بعضی از روایات هم ذکر کنیم طلوع شمس از مغرب اساسا طلوع شمس به ها این حافظه علامات ظهور باریت الله چون چینچین چین در طبیعت نیست پس محاسبات نجومی یک حسابی داره این کلمات سرموزه روشن شد میگه اون قسمتی که محاسبات ما قبول داریم چرا چون علمه مثل فیضی مسی شیمی می شما میگن آب رو بجوشونید رو راز این در هر را بجوشونید خب کار شما هر این کارو خامونه هر بچه این بچه‌ بکنه کوچیک بکنه باشه یک بارم بفهمه می‌کنه چاق رو روشن میکنه آب بجوشه نه این یک نکه علمی می خشوف خشوف بود دماغ و, و حالا ما این اضافه میکنین حالا اون ها که خیلی برایشون مشکل بود و خلک اول و این حوا و حی و قادر و حیات دارند و چنین حرکت ارادی دارند و حرکت به ای از اون حرفایی که نمیشه اما به هر حال الان در اثر پیشرفت علم نمیرا مت به وقت من دیدم مثلا نوشته نزدیکه وقتی که ماه نسال رو کره زمین مثلا 40000 کیلومتر کذان 82 متر به مفهم نرشاک این دانش پیشرفته این حسابات نجومی دیگه محاسبات خیلی هم راحت مشکلی خاصی نداره این پیشرفته اینا میخوام بگم این علم اما اگر فرض کنیم وقتی ماه در آمد ستاره مریخ نزدیکش باشه این مثلا فرض اون موجب طوفان میشه این علم نیست اینو ما بگیم نه بیان این علم نیست این, این, این, این مطلب یا اگر زوحل در آمد در فنانبخ و نزدیکی مثلا فرسانی ستاره جوزا شد برجی جوزا شد این تأثیر داره این رو این علم نیست این منشهش نه ایک نقطه باشه نه ایک نقطه علمی باشه نه قابل تکرار باشه این فرسانی سه هزار سال قبل یک منسجم که من این کار کردم فنانی مهم بعد این نفر گفت یک سال شد مرد که دیگر گفت یک سال شد مرد پس ده بار 20 بار تجربه شده در طی دو هزار سال بعد رفت تو احکام منجمی و این احکام منجمین که گفته میشه یه چیزی بوده سابقا زیجات بشین گفتن و الان هم که رفت فارسی زید اصلش هدیه فارسی و الان هم اگر دیده باشه حتی ملازم فهمید تقییم قدیمی هست که مثل قدیمی داره بالاش اون صفحه بالا احکام و کواکم و سیار در این ماه دلاز بر چیه میخواد شانوید این چیز بالاش این شبیه این بوده بحثی که از البته مسلمان ها این رو بعدها که در اسلامی مطرح شد نسبت دادن به قدرت الهی و الله نلاح هن اجازاله خب یه آن پی در دروسی است این حتی اثبات این که خداوند این کاری کرده روشن نیست اثبات این که نظام طبیعت ظریفی نیست و انصافا از یال ما ان شاء الله یواشاش حقا با همین هاست یعنی واقع مطلب همینه یعنی واقع مثل این است که ما این رو از علمی هم قبول الان خب میذنین شما کی شرطی که آن در شناس اجرام تمامی شده قابل قیاس و نیست مثلا قابل قیاس نیست اگه اینا نسبت به مثل ماه اینا کاملا منتعلانه حرکت میکردن هیچ ای به ماهو الان خب خیلی از اون اوضاع عوض شده عرض کردم یه واری دیدم مگه من اشتراک کرده بودم تا 9 میلیون سال نوری با این تلسکوپ جید هاب میشن در فضا جلو برن خیلی نیم میلیون سال نوری به زبان آسانه که ستاره در درون هر سیارهایی درون هر اینا رصد میکنن تا 9 میلیون و هزار سال نوری در سابق مهمترین چی دیره؟ که میتونست همین هفته بود دیره. از قرمت شروع میشد تا زوحل تموم میشه. و تازه این هم اون رخصده علمی نبود الان سالهاست الان فرص سیارات سیاراتی که ده هزار سال نوری ده میلیون سال نوری با ما فاصله داره حتی مواد تشکیر دهندهش هم تشکیر میدن که مثلا این مثلا این مقلات جرمش مثلا اسیون روی داره این مقدار آهن داره این مقدار مس داره این مقدار چی داره این مقدار ماده اصالتاً از در به خاطر تجزیه نور نوری که از اون میگن تجزیه شدن سه بار تجزیه نور مواد تشکیل دهنده اون رو همونش تعریف بده اینا جز فعلا کارهای بچگانه شده اداره کارهای خیلی بالا باشه کارهای خیلی عادی شده و بلا اشکال با این پیش‌فرضایی که اعلام کرده هیچ من دنیای ایران حرفا رو نمیزنه مثلا مو حاوی نیست که راه اینجا آمد پس باران میاد یا بار این مسئله باران رو هم الان یه 50 سال رو به کامپیوتر دادن با یک شرایط معین و بیشتر از همون برنامه کامپیوتری استخراج کردن که آیا باران میاد نمیاد اونم تقریبا تحریرا نه تحریرا رو همین تجربه هاست تمام هدف سید مرتضی این بوده البته به نظر ما خیلی منصفانه بررسی بکنیم سید مرتضی توی اول بحث یک کمی چون که سید امطوس از اون تون رفته بود خیلی اشعار عجیب غریبا را به شیعه نسبت داده بود سید از این برای از به نظر ما طنجر شده انصافا بنظر مثلا بگی اینا توشون موحد نیستن اینا همه قائل به قدم عالمن اصلا این منجمین سابق اولینشون همه قائل به قدم عالم بودن قائل به حوادث عالم نبودن قائل به خدا نبودن و بعدا بگی این کسایی که الان جزء منجمینن دروغ میگن اینا تظاهر به اسلام میکنن انصافاً این هم خیلی تنده خداییش این بحثن که این اول کلام میشان کن به تندی نسبت دار خیلی تنده از کلم انصاف قضیه ما یه مهدارگاهی از این وقت تن می گاهی از اون هم مهدار یا از اون هم تن می مثلا فرصم امسال سقورات این ها نو فراسفه الهی بودن, چه این بودن؟ یه دفعه می کنی از اون ها می اینها اینا هم بودن منکر خدا بودن تو زواهر اون رساله ای که از افلاتون نوشته را چه به مرد سوکرات ظاهر شده ایشون به تناسخه، قالب معاد نیست. ظاهرش اینطوره. نزد اباظی ظاهرش اینه ای که مثلا نزد شراب و شاورکری و خیلی غلط یک مسائل خب حالا یک مشکلی که الان پیدا شده بیشتر سر اینه که آیا واقعاً این نوشته‌ها مال سوکراته؟ سهرات شو باید این نوشته. این نوشته ها باقا مال اخلاطون، واقعاً مال ارسطو است. درست درست نیست. بعد از سبوت چون رو غالباً نصفی کرده شد چندین سال صد سال چندین قرن با اون زمان حسیش فارسی داره دیگه این مخواهی بایدین بحثت باشم یه مشکل دیگه مشکلی ترجمه اینها به لغات فارسی یا عربی بوده مترجمین اولیه مترجمین بعدی در از یه این مقدار مثلا یه قدم اینها اینطور من بودن. یه این مقداری الان اگر ما بخوایم منصفانه وارد بشیم. عبارات قدماشون واضح نیست مثلر ما از اون کلمات هم واضح نیست مثل مسادر ما واضح نیست اما این مظلم هم بید میگیم هر کسی که الان این نجوم میگه احکام نجوم میگه این متظاهر به اسلامی این مسلمان کسی از سید مرتضا دورد آبادی واقعه چلا و برای آیه که سر منها نجمول من. نجمول من مالش به هر اون اسباح. آزازه ایشون با همه به لباس روحایت هستن دامات مرمه های کرد. خب ایشان تقویر میریسن احکام میکنن دلات و چی نشه ایشون که نگی باید مسلمان بالاتر بالا سر از مسلمان هم از به هر حال این که با اینها اصلا مسلمان نیستن دروغ میگن کزاها رو به اسلام میکنن اینا ایمانه به خدا ندن این هم دیگه اصافه خیلی تونده یعنی اینه عبار بینه بین این ما باید بین مثال چون اله آشوش نجرییم، هم یه بحث جم و جوریش بکنیم. انصافش باید بین مثال فرق بگذاریم مخصوصاً حتی اگر یک کسی خدای نکرده، خدای نکرده قائل شد که این اجرام فرکی مثل ماه، افلاک اینها قادرن حیر حیات دارد و اینها تأثیر دارند، حتی مستقل از خدا به این معنا که خدا اینها رو خلق کرد و اداره عالم رو به با اینها واگذار کرد شبیه حرف معتزله به خداون انسان خلق کرد و اداره زندگیش رو به با او واگذار کرد حتی بعضی تصدیق کردن که اگر تصور کنیم خدای در کار نباشه بشر میتونه زندگی خودش انجام بده خب اگر برفرض هم یعنی مرحوم سرموزه نقطه در نظر بگیرم برفرض هم کسی آمد راجع به نجوم این اعتقاد و پیدافتاری یعنی مثل اعتقاد معتزله باطله نه اینکه بگیم کافره خب ما وقتی همش اعتقادی داشت در میانه مسلمان ها حالا فرض کنید همون اختیار رو بیاد به اخلاق نسبت داده حالا اینکه اصلا فرض و اختیار رو به انسان نسبت دادن یکی چیزی پیدا شو گفت خب خدایی بوده خلق کرده لیکن ما مدبرات امران یعنی این تدبیر عالم رو در اختیار نداریم حالا فرض شد منبر بسا چون مخاطب چون مرحوم شیخ همی داره میاست وارد بحث میشه که چه مقدار از این عقائد کفر چه مقدار از این عقائد کفر نیست ببینید معیار کفر و ایمان رو باید خود ما تشخیص بدیم اول بله ما این مطلب قبول نداریم ما اختیار انسان در مقابل اراده الهی قبول نداریم. به این معنا که خداوند انسان خلق کرده که اگر خدا مراقبش بشه چه کار اونو انجام میده. می‌شنیدی چیزی؟ لکن این آیه یک هفته قبلی‌وی یک بحثم اینه. یعنی دقت می‌کنیم. یعنی یک بحث دیگر مسئله. اگر کسی پیدا شد که با آجرین اخلاق و ماهلاق سرطان باقلگا شد آبا سر، اینها حیات دارن، اراده دارن، آذیرن. و تاثیر دارن و زندگی ما رو اداره میکنن و تأثیر روی کره زمین دارن تمام افعال ما بونا اونها مستندن به این معنا که خداوند اونها رو خلق کرده تدبیر عالم بونا باگذار کرده و این معنای ول مود درات ابران که در اونبالا خواهد ده این نمیشه بگیم کافره می بگیم منحرف زالگون راه باطله این تفکر این تصور باطله اما دیگه که بگیم مثلا این کافره دقت میکنید انصافش خیلی مشکله یعنی مقداری هم در این مسئله یک مقداری به نظر ما این بزرگان ما یک مقداری تون رستن حالا اون اولی ها فرس کنیم مثلا فرس کنیم بطرنیوز چی میگفتن سقرات چی میگفتن عرسو چی میگفتن طب چی میگفتن جال میوز واقعش نصفی که از اونا به ما رسیده خیلی روشن نیست ابهام داره، میداره هاش مشکل داره. خیلی حالا ما بگیم مثلا این واقعا معمع نبوده ارسطو مثلا سقراط مثلا واقعا نبوده خیلی نه این طرفش استفاضه خیلی واضحه نه اون طرفش یکی بگه اینا ذو حکما الهی زیمان مبدع و معاد و درجات ها. نه اینه نه اینه نه اون یکی که از و قیاشی میکنه که اصلا ایمان به خدا داشته مثلا فلاسفه قائل به قدم ها عالم بودن حدوث عالم با خط انبیا مخالفه الهی انسان قضیه اگر بخویم منصفانه برخورد بکنیم الان ما در ذره چیه اول بیدیم اصلا افکار ما اونا هست نیست گفتن نگفتن نسخ مطلب چیه ترجمه چطور چی شده عبارت چطور آمده من همین بحثای گذاشته هم ارز کردیم شاد به که می کنیم نسبت دادشت گفتن خدا جسمه مرادشون از جسم بودن اسناد وجود دارن به کانه تامه اصلا موجود دارن خب اگه این باشه که کسون اینست قیلت نیکیم جسم مثل این جسم یه مقداری باید ترجمه درست شده ترجمه درست شده ثابته ثابت نیست و این یک مقدارش اونجاست اما در میان اسلامی ها در این که ادهی معتقده به همه نجوم بودن و معذاره که ایمان به خدا داشتن ایمان داشتن که خدا ایجاد کرده خدا فلان خاصیت تو گلگانزون قمر داشت چه به همون تو گلگانزون یا تو قمر این نکتهی پرده کنه اگر کسی گفت شما فلان مریض داشتین گل گاوزون معنیش اینه که این مشرکه مثلا این گروه میگه مثلا اعتقاد قدیم ملحد بودن خداشناس نبودن این که طبیبیام این یعنی که میگم مسربان بیخود نه چه تظری اینا ظلم انصاف این که مرحوم سیدن طابوس رحمهم الله خیلی گفت یک از گفت میواره به شما سری که گفت مثلا اینا مثلا بچه سندگی ابن شاهر که جزه شیعه آوردن و این هم پوران دختر فضل سهل و یا زن سهل و اینایی که اصلا زنی برامکه که اصلا محروض است قتل شاهر موسیقی از جفر بودن اینا رو جزه شیعه حساب کرده و بعد بودن چون اینا لمنون وارد بودن پس این حق میشه نه اون حرف های مرحوم سیدون طاوز حق انصاف نه این تندردی های مرحوم سیدون طاوز رضوان الله تعالی علیه انصافت اثبات این مطالب مشکله نه اینکه مشکله قطعی البطلا نه اینکه مشکله نیشهالا یهاشاش مطالب دو دویگه یهاشاش جمع جور بکن از وقت این عبارتیست که از سهل مرزان شده یه عبارت دیگه اینطور داره. داره سوالی ازش شده این عبارت هم الان موجود نیست در همین کتاب سرزی المحموم نهار کرده ایشان الی میرزا رشی میگم صفحه 289 همین جلد 58 بهار تا 290 یه بار دیگه هست از سید مرتضی قال قلنا نا ان الذی جاء بعلم النجوم هو ادریس بله ان و علم من جهتی علی علم من جهتی علی الحد الذی ذکرناه ظاهر معنا بغیر با ایشون احتمالاً رکمان جهت اسناد الهی و نه علم انهو لا یه جزو کونه ها دالتن کونه ها این دلاله داله الا ال الوجه فقط یعنی این که اراده الهی باشه لان نشه انما یه دلو ال الحد او علاهاد الوجه لده یه دلو دیلو العقلی علیه و قد بیننا تعذر داله که فهن نجوم نجوم خودش این کارو نمی کنه فلا هم یرقه الا ما زکرناه که الهی باشه ولقهت علا انه کیفیت دلالتها معلومون الان است. یعنی ما اجمالاً بعضی از موارد که اول من علم نجوم و ادریس اما اون حقیقت چی بوده واقعش چی بوده این روشن نیست لن شریعت ادریس ما علم من قبله کلمندره جزء آثار باستانی فلا نعلم الحالتی فإن كان قد بقیه تلکل بعض از تلکل علوم محفوظاً اگر بر فرضن باشه تناقلوا و تداولون لن نعلو لن نه ان يكون معلوماً لهو خب این هست مثلا همین علم معروف رمله الان یه جزء علوم نجوم هم این رو به مثلا به دانیال نسبت میدن مثلا ایشان مثلا و الا ميكون کلالک لم یعنی ایشون این حرف ایشان منصفانه تره ایشود یه مقدار درجه آرامتره که اگرم به اعدیاء سابق نسبت داده شده ما حقیقت این نسبت رو مطلع نیست از کسانی که تقریبا بعد از مرحوم سید مرتضا بلکه میشه این عبارت رو در زمان سید مرتضا رو زنبا سالا علیه نوشته چون ایشون این طور میگه این که میگم در زمان این مطلب رو ایشون داره بله. بلنزن نوشه چار سد و بیست هش کتاب شه بله اصلا که کلام کراچیگی رو مرحوم کلام کراچیگی چاپ شده دیگه خیلی مشکل نداره اینکه مستر میخواب کلام کراچیگی مرحوم ساحب کتاب کنزل تواهد از صفحه دیلیست و نردسه مرحوم مجلسی کلام ایشون رو اوبرده تا صفحه به اصطلاح دیلیست باز هم تلخیص کرده کلام ایشون رو ایشون تلخیص کرده البته مرحوم کراچکی به استدان یک مقدار بیش از مرحوم سید مرتضا وارد خود بحثای خود نجوم شده و کلماتی رو از خود منجمی نقل کرده و گفته که کلمات اینها خیلی بله نه بله ایشون نوشته از طبی نیدو بی وقت این بعد از سلیم‌رضا است و هم از زمانه سطح سمان و 20 و 40ه بله نه وقت سال 428 سلیم‌رضا وفات 636 عرض کردم ایشون این نوشته رو در زمان خود سلیم‌رضا نوشته و معاصر ایشون حساب میشه بیننده و ایشون یه مقدار زیادی در این جهت بحث داره که بله یک بحث ایشان اول ایشان اینه انن ها هل کوا شده و اوضاع امکانات الل اندل حواث عمل اطلاع ال احکان و اخذ توانال انل المولید و عمل وا زوا رو به مطارف الان زیجات میگرد زی رو زیجات میگه زیج و تویل سنین ایشو بگیم برپرد اگر این مختب درست باشه چه اهل میان منجم بیرند و طالعشون هم وقت ساعت تولدش و زیجش و اینا نگاه بکنه خب به درده اینکه ایجا نمیشه معنل اندل انسان لایر داره علام یزید فی فی سعده ولی همین قصد من نفسه و ما کامل من مولده لا یتغیر مغی... دردش هم یاد بگیره که مثلا ناراحت میشه ناراهدی برش مرض میاد این یکون قلقان نفس منقسم الخاطر یستبد قربت سعاد و یستفیل قصر الاغاب یه حواسش پرته که کیم مریض میشن که اوزان به هم میخوره این مثلا منجبه اینجور گفت و ال اخر و این میگه مانع زندگی میشه زندگی انسان به هم میزنه اوضاع به هم میزنه یک مقداری این این مذهب مذهبی که ایشان اینجا اشکال کنه البته این اشکال به یک نحوی مختلفی آمده. این از اشکالاتی است که به این احکام منجمیه این به چند تقریبی یکی که همینه که ایشان گفته که آدم فرض میکنه تأثیری هم نذاره ناراحت میکنه و بعدا چه تاثیر داره بالاخره این طالب این اقتدار داری مقام همینه دیگه این جوابش واضحه و اون همون جواب معروفیه که ما میگن که هولاکو به خادمانتی که یک خدای داره که یک راه خدای برسون تا حوادث پیگیری بکنی هولاکو گفت چه فایده داره دیگه حالت واقعه خادیم که نه اگر راه پیدا بکنیم کمتر ناراحت میشیم هلاکو باور نمی کرد تا این تجربه معروفی یک شب یک سینی خیلی بزرگی به بزرگ مسی و از بالای یک مکان مرتفع در لشکرگاه انداختن صدای عجیبی کرد. سر سربازا بلند شد سوالی ازش خیلی دشمن حمله کرد خیلی اوضاع تمام اردوگاه رو به هم ریخت بعد وهلاکو گفت چرا تو ناراحت نشدی چون تو علم داشی که چیه. اونا چون علم نداشتن من آشوب تو اردوگاه شد. اما نسبت به تو این اجمالش این مکتب که وزن نشه درسته اما خب علم منشاء تسین گیری میشه یا مثلا است که میذونه میمیره یا مریض میشه فلان روز حداقل می بینی قبلا وقت میگیره مثلا آماده میکنه و خودش امورش رو مرتب میکنه این, این اشکال اینا این ایراد قابل ده اشکال دیگری هست در اینجا که حالا چون ممکن دیگه نخونیم از اشکالات و نقوظ بر اینها و اون این در یک تاله واه در یک وقت واحد ده تا نفر دنیا میار. این منجم برای این آقا میسه تو تاله اینطور اینطور میشه مخصوصا برای شازاده ها و پسران شخصیت ها و اینها غالباً یه منجم هر بود اون تاله درست میکرن که این اینطور میشه تالهش و این از آیدش این میشه ملک میشه پادشان میشه الى آخری میگه خب این سؤاله همون زمان گفت به قول معروف همون زمان یک فرد بیشاری یا یک جامعه عقب اکتازی در همون زمان هم خب تاله تاله یکیه. کشور چه طالعی نکی در همون زمان وایه برای این بچه طالع اون نتیجه میده برای اون نبچه می‌ده طالع نتیجه دیگه می‌ده این فرق این دو را شوید داشته باشیم این طالع‌هایی که اینا نوشته اگر دقت بخونی هر تاریخ کتاب نصوص تاریخ مال ملوك قاجار قادشان قاجار رو خیلی اشهازادا طالعش هم نوشته طالع استاد چند و دلار در این کار از این طالع‌های دروغی ای که اینا نوشته‌ان خب در همون لحظه تا ها هر دی دنیا میادن که هیچ امکانات ندیشتن چطور شد طالع در این موجه این اثر شد در اون بقیه نشد اینم یک راه دیگه و راست هم هست. این اشکال انصافا راسته یعنی اشکال اشکال واردیه 그죠 اشکال واردیه اشکال مهمتر که در اینجا اینا هم دارن همشون چون من میخوام یه نکنم يا واشاش ديام مطلب به رو یکی از اشکالات خیلی مهم این است که این حرکات نجوم نمیاد رو امور شخصی انسان دلارت بکنه یعنی شاید شما کلی رو بدید مثلا حال شما این باران میاد اما بگید ساعت فلانی در, فلانی در شهر فلانی این باران به قول امروز 20 میلی متر همین اوضاع فرقید دلاتون در شهر آخر 40 میلی متر و از ساعت فلانی برید، این خصوصیات آره مثلا به شما میگه شما این سفر برید این تالعتو نشون که شما سفر که میخورید با قطار میرید این قطار دو ساعت تاخیر داره بعد تورا میسه بعد مثلا این ماشین باش این خصوصیات خیلی ریزی که مربوط به زندگی افراد میشه این رو از راه نجوم نمیشه پیدا کرد یکی ازش اش... این تکرار شده در کلماتشون یعنی این به چند نحوی که این طالعها و رزیج ها اینها واقعیت ندارن یکی همینه حالا کلیت مثلا یه امسال سال پلبارانیه برای یک مناطق جنوبی مثلا یا سال کمبارانیه این رو میشی گفت اما با این تالعه بگیم نه در غم. از ساعت غلان تا ساعت غلان باران خواهد آمد این خواهد بود در وسط باران هم دو ساعت قدر خواهد شد اینا را از تمام از حرکت ما فهمیدیم یا حرکت خورشی فهمیدیم <تصفح> این بیرفتی در این مسالم کاملا مشهود این تالعه هایی که اینها گفتن در این مساعد تأثیر ملاشون بعد مردم کراچکی وارد بحث میشه. تاسه طولانی می‌کنه البته مثالی که در همون کتاب نجوم زمان خودش بوده این مثلا در اون زمان فکر می‌کردن مثلا بله. مثلا این آقا که این تحلیل کرده هیچ کسی دیگه تا حالا کار نکرده و هیچ کس هم نخواهد کرد بله ایشون مثلا نوشته غزاک راضا ابو الحسین عبدالرحمن نمر الصوفی له بن جملته وله مصنفات لم یعمل مثل فی عمله ولی اینجا مثله نوشته همین کتاب به اصلاح که دست من از 58 در باب شمس و قمر یک شرحی خودی ایشان راجع به مسئله سیر ماه و خرچی اونها داره و یک کلماتی رو راجع به تاریخش و زمانش و اینجور چیزاییشون متعرض شده خیلی مفصله اینجا نظر از سمانات اینجا بله خیلی مفصله که چه محاسباتی کردن بعد از محاسبات یک نفرشون نوشته محاسبه که فلانی این محاسبه کرده یک محاسبه ای کرده که تا حالا را و بعد از این هم نخواهد شد مولان <تصفيق> یعمل مثل اون نه تا حالا کسی این محاسبه انجام داده و نه بعد از این این محاسبه خب اینا واقعا ذهنیت های محدود زمانی خودشونه که ایشون بعد کلمات اینها رو به اصطلاح ذکر کرده البته یه مقدار اشکالات روی خودشون که مثلا این ثوابت گرفتن و خودشون هم میگن سوابت سوابت, سوابت نیستن دحسای نجومی کرده که الان هایی بخواهیم اینجا بخواهیم نه پایده داره و نه به اصطلاح خلاصش اینه که بعضی از زیش ها رو که با هم مقایسه میکنیم در طی مثلا حدود سه هزار سال که زیش های اولیه با حالا راجع به او اصلا ما به اصطلاح یک تقایوری بعد ایشان در اواخر بحثش همون که ایشان داره ایشان اینطور میگه و انه اذکر بعد حالا مقالت نافل نجوم و ما نعتقد و ها ما اعتقادم در لتعرفت طریقت پیراله اعلن ایدک الله انه شمس ورقمر ون نجوم اجسام محدثه منجس جنس اجسام العالم حتی صحبتا این درست هم هست یعنی الان هم به کره ماه یا کره مثلا خسلت هاش با کره زمین در, در جهاتش مشترق موازش مشترکه مؤتله من اجزا تحول حل اعراض ولی تبقائل فلحقیقه ولا ناتقه ولا حیه ولا قادره وقت قال شیخون از مفید انا اجسام ناریه در مواقع سعیلی نقل قول از دیگه هم نداره فا اما حرکت ها فی فعل الله فعلا فیها و هوا المحرکله رحیه من آیاته الباهرت فی خرقه و فیها منا فعل عباده لا طعصه بعد یک مقدار از آدم فا اما تأثیر المنصوب و علیها فعلا لاند فا کون شمس و غمر مؤثرین فلعالم اللہ کشتبه برس نداره و نه و نه نه نه نه نه نه واقعی اون ای در ذهنشون داشتن مثلا من اگه این کتاب رو تکان میدم چون دست من با کتاب مماس یه این شبهه خودن در یا خودم خونه مطالعه کردم میتونم جون خوند یکی از شبهات اینه که سطر میشه خرشی در زمین تاثیر روزایی که با زمین مماس نیست نه مثل شبهه فیزیکی در ذهنشون میشون بوده در ذهنشون بوده ایشون میگه انا نعلم ان الاجسام و امكان لا يؤثر احدها فل اخر الا مع مماس بین بينهما چون این شد قمر در ما در کره زمین تأثیر میذاره با اینکه با ما مماس نیست مثلا من کتاب رو بالا پایی برمشون به کتاب تماس دارم با کتاب اما نداشت ما من کتاب تماس دارم بالا پایی نشه میکنم ایشون میگه که لان از کنه و نه علم اندر اشتان و امکانه لا یا از و اهده ها فی الاخر الا ما اما ما ستن بین هما به انفسه ما او به واسطه. جوابه ایمی شونه این بود این هوایی که بین ما هست منشع میشه که شمس و غمر با ما تماس پیدا میکنه فهمل شمس و غمر شعاعن متصلن بالعرض و ما علیه ها یقوم و مقامل مماسه این از را از راه نور به اصطلاق و تصحه و بگی از تأثیرات و و من در لذیر اون که رو تأثیر شمس و غمر و او موجود رو مشاهد و امکان تأثیر و شمس از هر للحس و امید من تأثیر غمرف الازمان و گلدان و نبات و العیوان فه غیره و معامل کباکب فلیس نجبله ها تأثیرن نهستو به ما مثلا مردیخ رو حس نمی کنیم دوری و نزدیکی مردیخ ولا نقته الا وجوبیهی بالعقل عقلم قطعا نمیگه حتما با تأثیر داشته باشه ولاه و ایغرم من منتنه علم مستقیم این کار شما داش ما اطلاعی نذاریم بل من الجا از فلعبول. چرا؟ لان الله شعا متصرم بلعن از این بود اینه لعن و امکان دون شعا شب زرغمه فقیر ان یکون الله تأثیرون یخفا عن الهز خارجون ان, ان افعال خر پیلن لطیف این حرفیشون قابل درسته این هر من حرف کردم بایه قابل من دیدن در این عباراتشون مثلا ستاری که ممکن که سال دوری با ما فاصله داره که مثلا گفتن از نزدیک زمین رخ شده مثلا تاثیر رو اهواج مثلا رادیویی می‌ذاره این مطلب ایشون با این اون ستارهایی که اثر نمی‌شناخته چند صد سال دوری اصلا نمی‌شناسن این خیلی لطیفه این من خودم خوندم میخوام بگم که انصافا مرحوم کراجی خیلی منصفانه وارد بحث شده بحث علمی میگه ما یک ایده رو می‌بینیم یک ایده خیلی واضحه قورشی یک ایده کمتر گنا بقیه هم احتمال داره تصحیح بکنه قربشون بودیشون دورش شد روی کار زمین که نمی‌تونید بگید قطعی است نمی‌تونید بگید ممتنه این یعنی شیه با دنبال این بریم هر کدوم شواهد علمی تایید کنه اما این رفتی به توحید نداره این معناش اینه که خدا نی چربی خون داره تاثیر باشه روی زمین روی آب روی نفس نواف روی آب، مثلا روی مثلا زلزله روی اینا تاثیر بذاره بله کمایوقات تا امکان لها اون کمایوقات کان مع تأثیر شنس و القمر خیلی حقیقه من افعال الله عزوجل و یا همچون جمعش رو کنیم اینا را اگر استعمال به خدا ولی سی از ها, الی ها تأثیر و ها علیها نمیتونی دوگیم خود ماه الا علاوه چه توسط و تجربست کم کما تقول احرقت نار بردر سج و الا نار که خود چی نیستون خداون این قضای و کلال قول خداوند احمد شمس الان نفعت زر و فلاحی خداوند این افعال و انجام داده این تعبیری که ایشان یک دو تا نکته دیگه بعد ازش رخ خواهد شد طرز ان شاء تعبیات مرحوم کراشی